فصل شانس همان روزها بود که بالاخره تلاش های مریم و ناصر سمر داد و یک محل مناسب که با سرمایه ما جور درمی آمد پیدا شد و با کمک های امیر و سرمایهی که بیشترش از سهم خودمان بود همراه آزیتا و نرگس و مریم که هر کدام گوشه ی از کار را تقبل کرده بودند نزدیک های سالگرد تولد 25 پنج سالگیم. سرانجام مهد کودک ما که اسمش را سهر گذاشته بودیم افتتاح شد و پناهگاه و معوای دیگری به جای دانشگاه پیدا کردم که با پناه بردن به آن سرم را گرم کنم تا آنجا که می توانستم کار می کردم و خودم را خسته از بدنم کار می کشیدم تا مبادا روحم مجال جولان پیدا کند و دوباره فکرهای همیشه گیداخانم کند مخصوصاً که مرگم چون ماه های اول حاملگی را میگذراند و حالش خوب نبود نمی‌توانست زیاد کمک کند. پس من کارهای او را هم به عهده گرفتم و برای اولین بار از حس مسئولیت سنگینی که به گردنم بود هم دوچاره ی جان و خستگی می و هم مدیریت و مشکلات حاصل از آن را تجربه می‌کردم. و به رغم همه ی ها از حس شیرین توانایی اداره کردن ادهی قرق شادی می شدم. وقتی بچه هایی کوچک برای اسم نویسی می آمدند، با حیرت حس می به همه آنها علاقه دارم و دوست دارم که پیش ما شاد و راضی باشند. گهگاه مثل بچه که بازی می کنند، با خودم فکر می کردم همه ای اینها بچه های منند. بچه های که حال آرزوی داشتنه یکی را داشتم. این شد که روز به روز بیشتر به کارم علاقه پیدا کردم و مهد خانه دومم شد که به اندازه خانه خودمان دوستش داشتم. همان سال بود که آزیتا برای تولدم یک قاب قشنگ و بی زیبا از کارهای خودش آورد. منظرهای از یک خانه قدیمی ته کوچه با صفا بود که در میان درختهای تناور داشت و از فراز دیوارها شاخه های یاس و نسترن توی کوچه ریخته بود. این منظره بی آنکه شباهتی به کوچه و خانه قبلی ما داشته باشد، مرا بیاد آنجا میانداخت و انگار عطر یاس ها را حس می کردم. این تابلو شد زینت بخش دفتر کارم در مهد کودک آقای ابهری هم به عنوان کادوی تولد در ضمن افتتاح مهد کودک برایم یک قاب رومیزی فرستاده بود قاب خاتمی زیبا که در میان آن با خطی طلایی رنگ این بیت نوشته شده بود بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار چند و چند از پی کام دل دیوانه روم و با خطوطی مورب و در حاشیه با خطی تیرهتر این بیتها دایره وار نوشته شده بود گر از این منزل ویران به سوی خانه روم دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم زین سفرگر به سلامت به وطن باز رسم نظر کردم که هم از راه به میخانه رفم تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک به در سوم عبا بربت و پیمانه روم آشنایان ره عشق گرم خون بخورند ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم گر ببینم خم ابروی و مهرابش باز سجده شکر کنم و از پی شکرانه رفم آن روز وقتی کادوی قاب را باز کردیم و شعر را خواندیم چقدر از دست نرگس خندیدیم که میگفت گفت این جواب اون شعریه که اون شب حافظ باهاش آب برد آن قاب برای همیشه روی میز کارم ماند و هر وقت چشمم به آن می افتاد غیر ممکن بود تمام به ها را نخوانم. و بیش از پیش در قلبم از دکتر اپری و آزیتا و نرگس ممنون نشدم چون به کمک جلسه های ادبی دکتر بود که من تا حدودی با مفهوم امیغ واجه ها آشنا شدم. و در کمال ناباوری دیدم که یک بیت شعر میتواند چقدر معنا و مفهوم داشته باشد. و با کمک و راه های آنها به کتاب و کتابخانی علاقه مند شدم. اوایل گوش کردم به حرف‌های استاد و کم کم هم صحبتی و مطالعه باعث شد توی جلسه ها جا بیفتم. دیگر خجالت نکشم. حرفها را بفهمم و خودم هم حرفی برای زدن داشته باشم و فقط شنونده ای نادان که از همه چیز حیرت میکند نباشم لذت فهمیدن و دانستن و از قید خرفتی رها شدن را که به من احساس زنده بودن و اعتماد به نفس میداد اول از همه به نرگس و بعد به دکتر و آزیتا مدیون بودم برای همین همیشه ممنونشان بودم و نهایت دوستشان داشتم و اوقاتی که غرق خواندن کتاب می‌شدم یا با لذت و عشق به موسیقی اصیلی گوش می‌کردم که یک روز از آن متنفر بودم، غیر ممکن بود یاد محمد نیفتم. و پیش خودم آرزو نکنم کاش حالا که دیگر حرفهایش را می‌فهمم و حرفی برای گفتن دارم، فقط یک بار دیگر می‌دیدمش. کاش فقط ولی فایده نداشت. تا حالا کدام ای کاشته دنیا سمر داشته که حالا برای من داشته باشد من فقط رنج میبردم و بس رنجی نهانی که کسی از آن با خبر نبود رنج بردن باعث فهمیدن می شود و ذهن را به تلاش برای شناختن وامی دارد تا اینکه قواعد زندگی و تلخی و سختی را میشناسد و به درک و شعور می‌رسد ولی وقتی به فهمیدن و درک رسیدی، از آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت می شود. دیگر هم از فهمیدن خودت رنج میبری هم رنج فهمیدن آنچه دیگران درک نمی کنند و نمی فهمند و نمی بینند، به جانت نیش می زند و آزارت می دند. ولی هرگز در نادانی می شود در جازت، در فهمیدن نمی شود. وقتی چشمهایت باز شد، دیگر نمی توانی آن را ببندی و خودت را به نفهمی بزنی. و من تازه حالا می توانستم رنج آن سالهای محمد را درک کنم و خجالت بگشم. اما باز هم بیفایده. بهمن ماه آن سال بود که آزیتاته ی مراسمی مفصل با مهندس پارسا ازدواج کرد. و بعد از سالها من نرگس نرگست شور و شوقی برای این عروسی داشتیم. عروسیش مرا به یاد عروسی زریع انداخت و خاطرات گذشته ها. هوا همانطور سرد بود و برف ریزی میبارید و من که بعد از محمد به هر عروسی که میرفتم قمی مرموز به دلم چنگ میزد. آن روز انگار قسم چندی برابر بود. قسم زایده ی حسادت نبود. یک چور قبته نسبت به نگاه های پرمهر عروس و داماد آزارم میداد. داد. ناخداگاه یاد لحظه لحظه ی روز عقدم می و نگاه های پر محبت محمد. محمد. و حس اولین باری که دستم را لمس کرد. گرمایی که از یادآوری این حس به جانم میریخت دیوانه ام می و من باز هم غیر از کلافه شدن و رنج بردن چارهی نداشتم. آن روز هم با یادآوری روز عروسی زری باز خاطرات گذشته روشن و زنده جان گرفته بود. یاد شوقی افتادم که برای هرچه بهتر شدن در نظر محمد داشتم. و حالا که هیچ چشم و نگاهی برایم گرمای نگاه پر مهر محمد را نداشت زجر میکشیدم. اعتماد به نفس و رضایت خاطری که دو چشم مشتاق که انسان دل در مهرش دارد به آدم میدهد. حلاوت عزیز بودن برای کسی که برای تو عزیزترین است با هیچ حس دیگری در این دنیا قابل قیاس نیست و حالا وقتی داشتم حاضر می شدم دلم نگاه های موشکاف و دقت عمیق چشم های محمد را می خواست که هم تحسین می کرد هم موازه به محفوظ بودن من بود خدایا چقدر دلم می خواست بود و از لباسم ایراد می گرفت و از من می خواست خودم را یا صورتم را بپوشانم و من با شوق وجودی را که دیگر متعلق به خودم نبود می پوشندم. و او باز هم دقت میکرد و وسواس داشت و مثل کسی که آشق گنجی باشد که میخواهد از دید اقیار پوشیده نگهش دارد از من ایراد میگرفت آری هر چیزی میتواند برای آدم به آرزو و حسرت تبدیل شود مثل من که دلم حتی برای ایرادهای محمد هم بهانه میگرفت و حالا تازه به ارزش دقت او به تمام کارهایم پی می بردم. دقتی پر از مهر و غیرتی پر از عشق برای حفظ وجودی که او میخواست حتی نگاهی به حریمش تجاوز نکند. از حجوم این فکرها خدا می داند چه قوغایی توی قلبم می شد. ظاهرم آرام و شاد بود. می خندیدم ولی غمی به قدر قربت تمام دلهای غریب دنیا سینه و قلبم را می فشن. قمی غیر قابل بیان و ناگفتنی که شیرینی لحظه ها را با حسرتی جان کا از من می میگرفت و پشیمانی و افسوس را به جایش مینشاند با این احساس بود که در عروسی یکی از بهترین دوستانم شرکت کردم در حالی که خبر نداشتم توی این جشن نرگس را هم به نوعی از دست میدهم. آن روز نرگس که از شادی آرام و قرار نداشت مثل صاحبخانه از مهمان ها پذیرایی میکرد سر به سر دیگران میگذاشت و با حرفهای بامزه و شوخه های بجایش دیگران را شاد میکرد و لحظه در یک جا بند نمیشد و از آنجا که تقریبا بیشتر دوستها و اقوام آزیتا را می شناخت با حالتی خودمانی با همه برخورد میکرد. در این گیر و دار از قرار پسراموی شوهر آزیتا گلویش سفت و سخت پیش مرگز گیر کرد پسرمو که اسمش پرویز بود و مقیم آمریکا مردی چهل و دو ساله بود که از سنش خیلی جوان تر به نظر می آمد و می گفتند وضع مالی خیلی خوبی دارد. ولی به هر حال از نرگس چهارده سال بزرگتر بود. وقتی مسئله خاستگاری او مطرح شد، حال بدی شدم. از همه بدتر این بود که نرگس علیرغم مخالفت خانوادهش، دیگران و من و آزیتا، بعد از چند جلسه گفتگو پیشنهاد ازدواج پرویز را قبول کرد و در جواب مخالوت های شدید ما و جر و بحث های طولانی یک روز بالاخره حرف آخر را زد. به احمقانه ترین این ازدواج را قبول کرده بود. یکی این که می گفت پرویز من بابا میندازه. و دیگر اینکه که می خواست به خارج برود. کارمان از بحث به داد و فریاد و حتی قهر کشید. ولی نرگس تصمیمش را گرفته بود. فروردین به عقد پروین درآمد و شوهرش رفت تا برای اقامت نرگس و بردنش اقدام کند. برخلاف عروسی آزیتا که شاد بودیم، برای عقد نرگس گریه کردم. نرگس دو روز قبل از عقد همراه آزیتا آمده بود تا به اصطلاح با هم آشتی کنیم. آن روز هم هر چه سعی کردم با دلایل به او بپذیرا که اشتباه میکند. نرکز با خون سردی و آرامش برایم توضیح داد که خودش به تمام جوانب به قضیه فکر کرده و تمام حرفهایی که من میزدم خودش قبلا سبک و سنگین کرده. منتها می گفت که خودش روحیه خودش را بهتر میشناسد و آخر سر به شوخی اضافه کرد. تو نمیخواد دلت برای من شور بزنه. تو اگه عقلت میرسه یه فکری به حال خودت بکن که هنوز داری با یه شبه زندگی میکنی. بعد هم مثل همیشه قضیه را با خند و شوخی و سر و صدا تمام کرد و گفت حالا جریمه اینکه با دوست نازنینی مثل من قهر کردی، باید نهار ما رو ببری رستوران خانم جون. منظورش رستوران معروفی بود که نزدیک خانه امیر قرار داشت و اسمش مطبخ بود. من محیط این رستوران را به خاطر سبک سنتیش دوست داشتم و همیشه می گفتم آنجا مرا به یاد خانم جون اندازد یادش به خیر، آن روز چقدر از حرفهای نرگز خندیدیم و قصه من از رفتن نرگز و دوریش چندین برابر شد. و در عین حال احساس تنهایی و بی و بلا بیش از همیشه آزارم داد. همه ی دوستانم سر و سامان گرفته بودند و راهشان مشخص شده بود. فقط من بودم که حیران و سرگردان با گذشته زندگی می کردم. و هرچه چه گذشت درمانده تر می شدم حتی فکر ازدواشم آزارم میداد چون گذشته دست از سرم بر نمی داشت. انگار قلب و ذهن آدم در یادآوری گذشته ها و از دست رفته ها بی جلادهای دنیایند با هر شدتی بخواهی از خاطری یا گذشته فرار کنی با همان شدت آن را توی صورتت میکوبد و آزارت می ده. من برای اندیشیدن به آینده و ازدواج و غیره نخست باید گذشته را در یک کلام محمد را فراموش می کردم که برای مویسر نبود. درست مثل اینکه برای ندیدن و از یاد بردن چیزی رو از آن برگردانی و کسی چانت را بگیرد و به زور وادارت کند به آنچه روحت را می نگاه کنی به یاد آوری و به آن فکر کنی و اینجاست که دیگر راه فراری نیست. وقتی وجود خودت با تو در جنگ باشد، راهی جز تسلیم نیست. باید راضی به زجر شدی و تسلیم به خونه جگر. تا روزی که قلبت چانت را رها کند و بگذارد، اگر نبرای همیشه لااقل تا آنجا که ممکن است فراموشی باعث شود، راه زندگی تغییر کند، رویت را برگردانی و تصمیم بگیری. بدبختی من هم این بود. که در تمام سالهایی که به سرعت میگذشت در تک تک لحظه‌هایم اگر برای یک ثانیه هم خواستم به آینده فکر کنم انگار کسی چانه ام را می‌گرفت و صورتم را به گذشته برمیگرداند برای همین راهی به جلو و آینده نداشتم زندگی احساس و آرزوهایم پشت سرم جا مانده بود من مانده بودم و گذشته گذشته هم یعنی محمد، به همین دلیل چشمهایم را میبستم و با یاد او زندگی میکردم و وقتی هم که چشم باز میکردم مسلمن جز او کسی میدیدم نه میخواستم ببینم. ولی تا که یا کجا میشد به این وز ادامه داد. با گذشته زمان فشار مادرم بیشتر میشد و با زمزمه هر خاستگاری یا ازدواج دوستهایم او هم زمزمه اش را از سر میگرفت. از طرف دیگر فشار دوستانم بود که هر کدام به طریقی میخواستند مرا سر عقل بیاورند. مریم و آزیتا با دلیل و برهان و منطق و نرگس با نیش و کنایه و شوخی میخواستند مرا وادار به ازدواج کنند. و تازگیها گهگاه امیر هم غیر مستقیم گوش و کنایه میزد و من مجبور بودم خودم را به نفهمی بزنم. برای فرار از حرفها و خودم بر دل بستگیم به کار می و سعی میکردم وقتم بیرون از خانه بگذرد. اینجوری زمان هم انگار دنبالش گذاشته بودند به سرعت میگذشت. مریم مرگم حمل کرد و صاحب دختری توپل و شیرین شد که مثل عروسک پنبه یه سفید و نرم بود. اسمش را پریا گذاشت. من حالا دو تا عشق کوچولو داشتم. یکی سهر که روز به روز بزرگتر می شد و حالا کم کم می توانست راه و توی خانه باعث سرگرمی هم بود. و دیگری پریا که مثل عروسکی جاندار توی محل کار بود. در این میان زمان رفتن نرگس نزدیک و نزدیکتر می شد. و قصه های من بیشتر. به خصوص که آزیتا هم احتمالاً برای مدتی با شوهرش از ایران می رفت. تا به پیشنهاد پسر عمویش یا همون شوهر نرگس ببیند می توانند آنجا زندگی کنند یا نه. قرار بود با نرگز هم سفر شوند و من دلم به اندازه دنیا گرفته بود و احساس تنهایی و قربت می کردم. یکی از همون هفته های آخر توی کوه بود که دوباره آزیتا و نرگس صحبت را به من و آینده و گذشته کشندند. و آزیتا مثل همیشه با ملایمت و نرمی زبان به نصیحت باز کرد. مهناز، قبول کن که تو این قضیه رو خودت انقدر برای خودت بزرگ کردی. هزاران آدم هستن که حتی با هم زندگی میکنن و بعد جدا میشن. درسته، یه مدت وقت لازمه ولی به هر حال فراموش میکنن. اصلا تو اینجوری فکر کن. شاید ارزش این دوست داشتن برای تو، به خاطر همین جداییه به خدا لیلی و مجنونم اگه به هم می رسیدن دیگه عشقشون افسانه نمیشد قبول نداری؟ ولی من فکر میکنم افسانه شد نه برای اینکه به هم نرسیدن واسه اینکه که کسی رو جای هم دیگه قبول نکردن یعنی فراغ و دوری و زج رو قبول کردن و اسمش رو قسمت و تقدیر و زندگی نذاشتن که بتونن فوری برن سرقه لیلی یا یه دیگه نرگز خندان گفت: ای <تصفح> نه بابا. آزیتا کل بابات کار خودشو کرده؟ مردم چه غلط زیادی میکنن میشندی ؟ آزیتا در حالی که میخندید گفت: حالا گیریم اینه که تو میگی. ولی خب بابا اونا این کارو دو طرفه کردن. تو چی؟ تو حتی خبر نداری مجنون طال چند تا صاحب صاحبه چندتا لیلی دیگه شده. یا اصلا لیلی اولی رو یادشو یا نه؟ به خدا این کار تو اشتباه محه. اگه با یه خاطره میشد یه اوم سر کرد نصف بیشتر آدمای دنیا تنها بودن. شاید از همهشون؟ ولی نمیشه محناز جون تو رو خدا ناراحت نشو ولی قبول کن که داری احمقانه عمل می کنی. ببین که میدونستی کارت خلط نیست، سر بلند میگفتی، من هنوز محمد و دوست دارم و نمیخوام برم دنبال زندگی. ولی خودت میدونی این حرف بیخوده. برای همین حرفی برای زدن نداری، تازه مجبوری تو قایمم بکنی. قبول کن که مادرت حق داره، برادرت حق داره، ما حق داریم. آخه سر کردن به پای آدمی که معلوم نیست کجاست و چه میکنه؟ اصلا سر سوزنی از گذشته و تو یادی توی ذهنش هست یا نه؟ خودت بگو اسمش چیه؟ نرگس فوری گفت خریت اصلا شاید اون آقازاده زاده الان صاحب چند تا بچه باشه اون وقت این خانم این سر دنیا شده جولیت بیچاره گوله این باقی جوونی جوانی و آب و رنگ تو نخور اینم تموم میشه اون وقت باید بشینی مثل محمد ماتمشو بگیری. فکر میکنی چند وقت دیگه بخت برگشتایی مثل همین آقای ارجمند خر قیافت میشن آشق سینه چاک. با زهر خندی تلخ در حالی که دلم از حرفای هر دویشان گرفته بود گفتم. یعنی تو نمیفهمی که من از همین که اونا فقط خر قیافه من میشن فراریم؟ می میدونین چیه؟ بابا من یه اشتباه کردم. چه میدونم یه خریه یه دیوونگی؟ تا آخرشم وای سادم. تا الان که صدام در نیومده بعد از اینم همینطور. دیگه بحث سر چیه؟ یک دفعه آزیتا گفت، ای بابا، خب تو که اینقدر اصرار داری چرا نمیگردی دنبالش؟ با تهیور و گیج گفتم، من؟ نرگس فوری هیجان زده گفت وای راست میگه چه خنگ بودی چرا تا حالا به این فکر نیفتادی؟ من دوباره بهت زده پرسیدم ما بگردیم دنبالش نرگس گفت آره دیگه پس کی؟ بلاخره باید بفهمیم این آدمی که تو داری خودتو فدای فکرش میکنی کجاست در چه حالیه؟ آخه چطوری؟ از کجا؟ نرگس با هرس گفت. بازمس هالوا حرف زد. بالاخره تو آدرس مغازه پدرش، خونه شون، خونه کس و کارش، محل کار شوهر خواهرش چه میدونم؟ یه جا رو داری دیگه؟ خودش هم نباشه خونوادش اینجا هستن. آب نشدم برن توی زمین که. این چیزی بود که من واقعا هیچ وقت با این فکر نکرده بودم. از تصور خودم که در به در دارم دنبالش می گردم، حال بدی به من دست میداد. این چیزی نبود که بخواهم. زار و حقیر خرد و شکسته. اگر پیدایش می کردم، به چه دردی می‌خورد، چه حاصلی داشت؟ نقص دوباره انگار فکرم را خوانده بود گفت. بابا نمیگم که برو داد بزن آهای من خانه به خانه کو به کو درم دنبالت میگردم. فقط میگم دورا دورگی جوری خبردار بشیم. ببینیم کجاست؟ ایرانه؟ زنگ گرفته یا نه؟ چندتا بچه داره؟ این حرفهایش همیشه مثل کاردی بود که به قلبم فرو میرفت. و من حتی رویم نمیشد به او بگویم که از تصور ازدواج محمد دیوانه میشوم حقیقت این بود که میترسیدم. از اینکه آن حرف‌ها حقیقت داشته باشد میترسیدم و مدت‌ها بود از روبرو شدن با واقعیت و حتی فکر کردن به آن فراری بودم. اگر باقی عمرم هم به محمد گذشته دلبسته میماندم، زجرش از پیدا کردن آن محمدی که نرگس می‌گفت کمتر بود. گذشته زندگی من با محمد و خاطراتش مثل چاهی بود که مرا در خودش بل ایده بود و راه فراری نگذاشته بود. راست می گفتند. کارم احمقانه بود. اصلا دیوانگی محض بود ولی چاره ای نداشتم. دیگر از دست خودم هم خارج بود. برای همین چونان با ناراحتی و تند و تیز و گزنده گفتم نه که آنها ساکت شدند و دیگر چیزی نگفتند. بقیه راه در سکوت گذشت. و من در حالی که تلخی حقایقی را حس می کردم که نرگس و آزیتا ها و خودم بارها به آن اندیشیده بودم با اخمه در هم قدم بر می داشتم. که پیرمردی با آوایی هزین در حالی که دسته ای پاکت دستش بود و شعر سوزناکی می به ما رسید. و با لحنی ملتمس پرسید بابا، فال نمی خری؟ من که دلم بی نهایت گرفته بود بی اختیار دست بردم و یک پاکت را از لای پاکت ها بیرون کشیدم فرقه ای در آن بود که رویش نوشته بود یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کُلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور بقیش را نخواندم از خوشحالی و بدون اینکه بشمارم چندتا تا اسکناس اسکیفم بیرون کشیدم به او دادم و بعد در حالی که کاغذ رو مثل فت نامه جلوی چشمان آنها میگرفتم با خنده و خوشحالی گفتم بفرمایین اینم جواب نرگس با نگاهی که زهر قذب و تمسخور داشت گفت «نظر بیشتر از این به کم اقلیت ایمان بیارم واقعیت با این نصف ورق کاغذ و عوض نمیشه میشه؟ همانطور خوشحال گفتم حالا شاید منظور از یوسف محمد نباشه همون عقل من باشه این که دیگه امکان داره نداره؟ این بار آن دو از ته دل خندیدند و من دلم نیومد ورقه را دور بیاندازم. فردای آن روز کنار ورقه تاریخ آن جمعه را نوشتم و گذاشتم زیر شیشه یه میز کارم توی مهده کودک تا هر وقت چشمم به آن میخورد خورد به خودم دلداری بدهم از آن به بعد این شد یک رمز بین ما هر وقت بحثمان می و نرگس می خواست به خاطره به قول خودش کم عقلی من رو مسخره کند به تنه می گفت. دیدی یوسف گم گشته باز نیامد به کنعان من هم همیشه خندان می گفتم. گفته بود میاد، نگفته بود که کی میاد، گفته بود؟ <تصفيق>